سلاح از ما چه می که مستان را سلا گفتیم به دور نرگس مستت سلامت را دعا گفتیم در می خانم بکشا که هیچ از خان قه نک شود گرت باور باودور نه سخنین بود و ما گفتیم من از چشم تو ای ساغی خراب افتادم لیکن بلای که از حبیباید هزارش مرحبا گفتی اگر برون نبخشایی پشیمانی خوری آخر به خاطر دار این معنا که در خدمت کجا گفتی قدت گفتم که شمشاده است بس خجلت به بار آورد که این نسبت چرا کردیم و این بختان چرا گفتی جگرشون نافهم خون گشت کم زینم نمی باید جزای ان که با ظلفت سخن از چین خطا گفتی تو آتش گشتی ای حافظ ولی با یار در نگره زبد اهدی گلگوی حکایت با سبا گفتی